سلام بنده لیلا هادی هستم زبان آموز زبان عربی از به اصطلاح زبان آموزان استاد راف آدم الهاشمی هستم و خیلی مدت ها بود که دنبال کلاس های عربی میگشتم چون هم زبان عربی رو دوست دارم هم رشته تحصیلیم که حقوق مرتبط با زبان عربی هست و هم خب به فکری بیزنسی هستم که خب به زبان عربی مربوطه و خب خیلی وقت بود که یک سالی بود دنبال آموزشگاه مناسب بودم و چون خب یه کوچولو از عربی سر در میآوردم مؤسسا می‌رفتم با اساتید صحبت می‌کردم ولی احساس می‌کردم اون چیزی که می‌خوامو این این اساتید یا این بزرگوارای مؤسسا نمیتونن به من ارائه بدن چون دنبال یه راه میان بودم که زودتر به هدفم برسم و اینکه مثلا اونی که باهاش دارم زبان و چیز میکنم یاد میگیرم ازشون متوجه بشن که من چی میخوام خب به اصطلاح من ترجمه میخواستم و خوشبختانه بر حسب گشتنای خودم نه بر حسب اتفاق استاد راپ آدم الهاشمی رو به معرفی کردم و من باشون آشنا شدم بعد متوجه شدم که ایشون یه سایت خیلی قوی به اسم م... مکالمه زبان عربی دارن خب و بیشتر راغب شدم که با ایشون آشنا بشم و کلاس ها رو که با ایشون ورداشتم متوجه شدم که انتخابم کاملا درست بوده به خاطر اینکه ایشون استادی هستن بسیار خازق، بسیار مجرب و اینکه متوجه میشن که زبان آموز چی میخواد زبان آموز قواعد میخواد زبان آموز به اصطلاح چی میگن اسمشو ترجمه میخواد لغت میخواد و چون متوجه میشن بهترین و سریعترین راه و پیش روی زبان آموز میذارن و یه چیزی که من از اخلاق این استاد خیلی خوشم اومد به تمام معنا به معنای واقعیشون معلم هستن دلسوز فایل هایی که تو اختیار من گذاشتن خب من فایده رو بخوام بیرون تهیه کنم کتاباشون خیلی حزینه میشه, خیلی حزینه میشه. کتابا رو به صورت رایگان هستن به من ارائه کردن یا مثلا درسایی که میدن کتاب کتابایی که معرفی میکنن برای خوندن فیلم میپرستن برای این که مثلا من میخوام زبانم زودتر مثلا اوکی بشه این که توی کلاس خب خیلی جدی هستن ولی در این حال محیط کلاس خسته کننده نیست مثلا من یک ساعت و نیمی که توی کلاس ایشون هستم اصلا خسته نمیشم و خب ایشون باعث شدن که من علاقه به این زبان دو برابر بشه چیزی که خیلی مهمه تو اون پروسه آموزش که این زبان آموز علاقه من بشه به ادامه دادن و من خیلی از این نکته خوشم اومد و این که کسایی که با ایشون کار میکنن خب، یه جورایی شغلشون بیزنسشون همه چیزشون تضمین شده چون با توجه به خواسته شما جلو میرن ها، حالا خود من به شخص نوب، به نوبه خودم که زبان آموزشون ایشون هستم یه کوپنی دارم حالا کسایی که از طریق من وارد کلاسای ایشون میشاینن موسسه‌ای ایشون میشن از این کوپن میتونن استفاده کنن و ده درصدم هم تخفیف شامل حالشون میشه که من خودم خیلی از این تخفیفات از استاد رافه گرفتم خیلی تخفیفات خیلی خیلی خوبی دارن که واقعا به درد همه میخوره و خب کد من که شما میتونید ازش استفاده کنید برای سود اسمش هست M A H 99 25 و سایتشون هم مکالمه عربی.dot.com هست سایت مکالمه عربی.dot.com خلاصه اینکه ایشون هم از لحاظ کیفیتی خیلی خوب کلاس‌ها جلو میبرن هم از لحاظ کمیتی یعنی کلاسشون از هر لحاظ سوده هم از لحاظ یادگیری هم از لحاظ علمی من به شدت به شدت توصیح میکنم به کسایی که میخوان زبان عربی رو درست حسابی یاد بگیرن با سند و مدرک یاد بگیرن می میکنم که حتما کلاسای استاد راپ هاشمی رو حتما شرکت کنید مطمئن باشید که زرر نمی کنید که هیچ صد درصد هم سود میکنید ایشالا که موفق باشید